الذين آتناهُ الكتاب يععرفونه كما يعرفون ابناءهم وَإِنفريق مِهُم منهم يكتون الحق وهم يعلمون کسانی که دادیم به آنان کتاب آسمانی را میشناسند او را چنان که میشناسند. پسرانشان را و همانا گروهی از آنان قطعا پنهان می‌دارند. حق را در حالی که خودشان دانند. الحق من دانند حق از سوی پروردگار توست پس البته مباش از تردید کنندگان ولكل وجهه هو مولاها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا اِنَّ الله على كل شيء قدير و برای هر كسي جهتي که وی روی کننده است به آن پس پیشی جویید به سوی خوبی ها هر جا که باشید میآورد آورد شما را الله همگی همانا الله بر هر چیزی تواناست است و من حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام و اینه للحق من ربك و الله بغافلین تعملون و از هر جا که بیرون رفتی پس برگردان روی خود را سوی مسجد الحرام و همانا آن البته حق است از سوی پروردگارتو و نیست الله غافل از آن تا کنید ومن حيث خرجت فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. فلا تَخْشَوهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِئُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ و از هرجا جا بیرون رفتی پس برگردان روی خود را سوی مسجد الحرام و هر جا که باشید پس برگردانید رویتان را سوی آن تا نباشد برای مردم بر ضد شما دلیلی مگر کسانی که ستم کردند از آنان پس ما ترسید از آنان و بترسید از من و قبله را تغییر دادم تا تمام کنم نعمتم را بر شما و باشد که شما هدایت یابید کما ارسلنا فيكم <تصفيق> رسولم یتلو علیکم آياتنا و یزکیکم الكتاب والحکمت و ما لم تعلمون همچنان که در میان شما پیامبری از خودتان که می بر شما آیه های ما را و پاک میسازد شما را و می آموزد به شما کتاب قرآن و سنجیدکاری را و می آموزد به شما انچرا نمی دانستید فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي ولا تَكْفُرُونِ پس یاد کنید مرا تا یاد کنم شما را و سپاس بگذارید برای من و ناسپاسیم مکنید یا ایوها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة و این الله مع الصابرین ای کسانی که ایمان آورده یاری به جوید به وسیله شکیبایی و نماز، همانا الله با شکیبایان است.